در 50 درصد از پاسخ‌فکن ما گفتند که حوزه اقتصاد ناکارآمد بوده و اون چیزهایی که در آن اساتذه گشته در حوزه سیاست حدود 6 درصد گفتن 7 درصد گفتن ناکارآمدی دارند و 6 درصد کارآمدی حوزه فرهنگ و از اون بهتره در مجموع میانگین حدود 55 درصد پاسخفکن ما، به کارام... ناکارآمدی نظام سیاسی اقتصادی فرنگ ما در واقع نظر داره رضا پس این انوان انوان خودساخته نیست یعنی مستخلص از یک جریان اجتماعی و پایگاه اجتماعی داره رضا انوان انوان نیست که ما خودمون در دارو آقا مثلا پیش فرض گرفتیم ناکارامده می‌خوایم کارامدیش رو بحث کن. نه این در یک پیمایش اجتماعی که چاپم شده در واقع بیان شده. لذا این جد ما مشکلی نخواهیم داشتیم. مش... نکته دوم این از که دقت بفرمایید در کارآمدی چون ما با پدیده های مرکب در با اصطلاح روبرو هستیم. مثلا یه سازمانی که نگاه میکنی ده ها جز داره. یک نظام سیاسی که نگاه میکنی ده ها جز داره. یه پدیده مرکبه. لذا نمیشه از یک ناکارآمدی یک جزء به ناکارآمدی اجزای دیگه پی برد یا بگیم تأمین بدید لا الا یک جوز ناکارآمد باشه دو جوز ناکارآمد باشه سه جوز دیگه کارامد باشه لذا نمیشه از ناکارامدی یک جوز تأمین به کل سیستم داد اگر ما بر فرض اومدیم گفتیم که سیستم ما سیستم سیاسی ما ناکارآمدی از یک بخش داره نمیشه که کل نظام ما ناکارآمد است این یه نکته مهمه که باید در نظر داشته باشید نکته سوم این استش که کارآمدی آمدی شاخصهای متفاوت میتونه داشته باشه علل مختلف میتونه داشته باشه آنچه که ما بحثمون هست از منظر نگرش سیستمیست و سیستم سازی که حالا بدن مفصل تر عرض میکنم از این منظر از این شاخص داریم نگاه میکنیم نه از شاخصهای دیگه چون کارآمدی شاخص های متفاوت داشته باشه ما از شاخص سیستم و سیستم سازی داریم بحث میکنیم کنیمیم. نکته بعدی هستش که ناکارآمدی احتمالی اگر رسیدین به معنای ناکارآمدی اسلام نیست ناکارآمدی من مدیر ناکارامدی من جزئه لذا این مسئله تو ذهن مبارک به شریفتون نباشه که مثلا فصلکنید که حالا این مثلا اسلام ناکارآده است نه. میگه هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست و نه تشریف تو بالای کس کتاه نیست مشکل از ماست پس این رو نمیشه تعمیم داد و متوجه باشند دوستان که در های اجتماعی نگن که آقا مثلا پس اسلامتون بدهد نمیخورد نه ناکارآمدی احتمالی در بخشی از های حکومت این به معنای ناکارآمدی اسلام نخواهد یه نکته بسیار بسیار من نکته بعدی این که مهمترین ملاک مردم در کار نظام اندیشه سیاسی من شما نیست هر چقدر نظام و این اندیشه سیاسی شما سازوار باشه منسجم باشه متلائم باشه درست باشه حقانیت داشته باشه و تخصوصتش از اکرامدارای مشروعیت باشد مشروع تدولیه اینها از منظر مردم معنای کارآمدی نیست. کارآمدی ارتباط مستقیم به عمل کرده نظام داره که اصطلاح از این کارآمدی به مشروعیت ثانویه می میکنن. ببین هر نظامی در مقام حدوث یک به اصطلاح مشروعیت اولییه میخواد که چرا باید این حاکمان حکومت بکنه و چرا ما باید اطاعت کنیم. این مشروط چطور این اندیشه سیاسی پاسخ بده؟ که ما خب پاسخ خیلی خوب و موندتا و مرزا و سازوار و همه هم درست داریم ولی وقتی که این حکومت مستقر شد عمل کردش هر حکومتی یا لیبرال باشه دم... دموکراسی باشه دیکتاتوری باشه عمل کردش تعبید میکنن به کارآمدی. یعنی در حدود در بقایش هم باید مشرویت سانویه داشته باشه و باز اینو دقت بفرمایید لعل الا مشروعیت ثانوی یکم کار آماده بشه مشروعیت اولیه شما رو تیز سوال می‌کنه یو من نمیگم خود رهبری در یک کلام این رو داره که اگه ما الان اینجا حواهم باشه به خانم برای شما ایشون میفهمد مشروعیت ما وابسته به انجام وظایف و کارهایی در انجام وظایف است و هر جا کار آماده نباشد مشروعیت از خواهالت یعنی نکته نکته حساسی است اینکه ما بعضی مثلا شما در تاریخ سیاسی معاصر بخوید جمال عبدالناصر دیکتاتوری با کودتا اومد سر کارو پس مشروعیت اولیه داشت یا نداشت داشت یا نداشت نداشت دیگه با کودتا اومد دیگه یعنی نه ادله شرعی بود هم بود نه ادله عقلايي نه مردم داشت با کودتا اومد ولی جوری عمل کرد داشت که مشروعیت ثانویه پیدا کرد و تمام عراب اون زمان می پرستی درش به عنوان نقطه اختدار به اسطلاح عربیت و غروبت بنابراین اه، اه، کارآمدی به عمل نظام رب دارد نه به اندیشه نظام لعل اندیشه شما اندیشه سیاسی نظام شما کاملا درست متلائم سازوار همه چیش درست عمل کرد که ضعیق باشه حتی اون مشروعیت اولیتون هم از بین میبره دوچار مشکل میکنه خب نکته بردیدم بگم که کارآمدی نظام در سه مرحله تأسیس استقرار و تثبیت، اینا ما شاخصهاش با هم دیگه فهم بکن. یعنی موقتی که میخوایم که نظامی رو تأسیس بکنیم یک یک جور کا سیستم ها و از نظر نگاهی سیستم نگاهی می‌کنیم بحث کارآمدی مطرح میشه در بحث استقرار یه جور بحث کارآمدی هست در بحث تسوید و تداوم اینا با هم دیگه فرق داره و نکته آخر اینا بگم چند نکات مهمی هست در بحث کارآمدی اینکه اهداف در هر نظام سیاسی با نظام سیاسی دیگه متفاوته نظام سیاسی اسلام اهداف خاصی داره که نظام سکولار نداره نظام لیبرال نداره این اهداف دست ما رو میبنده در بعض جا ما ماست برای کارآمدی به معنای مصطلعش عمل کرد بشید چجوری می‌بنده؟ یعنی ما هر کاری نمیتونیم بکنیم چرا؟ چون ما معتقدیم که اهداف وسائل رو توجیه نمی کنم حرفی که دانشمند از دانشمند غربی میزنن؟ که هدف اهداف بسیار توجیه میکنه هر کار خواستیم میتونیم بکنیم موت خب چون اینو معتقدیم هدف مقدسه هر کاری نمیتونیم بکنیم پس جلوی بعضی از عملکردها ما رو خواهد گرفت بعضی از کارایی های ما رو خواهد گرفت بعضی کارها هزینه بر میشه کار آماده یعنی هزینه کمتر ما هزینه اون بیشتر میشه چون اهداف مقدسی داریم لذا این نکات رو داشته شد نظام با نظام فرق داره وقتی نظام میشود نظام چون اهدافش در واقع غیر از احتاف این نظام سکولار هست طبیعتا این احتاف از احتاف میکنند با به مانه امت ره بشه و نظر ما کارمون رو انجام بیم. چون هر کاری نمیتونیم بکنیم عراق بمب شیمیایی میزد بمب چی میزد ما نمیتونستیم بزنیم اسلام اجازه ما نمیده مدون بگناه بزنیم از حضرت امام میخواستن که اجازه بگیرن عراق رو بزنن شهرهای عراق و. امام با وسواس خواست که آقا فقط به مراکز دولتی نمیدونم چی چی قبلش اعلام کنید فلان کنید چی کنید میخوایم یه جور مثلا ما بزنید تصفه بانک رافدین عراقو که خواستن بزنن که تو اون زمانم زدن که موجب نزول دینار عراق هم شد با کلی وسواس که آقا مردم بورش نباشن فلان نباشه چی نباشه ما بانک مرکزی عراق رو بزنن پس ما رو نمیدونن مثلا اون شیمیایی بزنید اون بمب اتم اینکه رهبری که در دکترین ما در نظریه ما بمب اتم جایی نداره به این جهت است که نمیتونی مردم رو با یک مثلا با یه یک ده هزار نفر مردم کاری که آمریکا واسه ولی آمریکا خودش مثلا نیست میره تو هیروشیما میزنه پس اینا لازم نشید که برخی از ناکارآمدی‌های احتمالی احتمالی لا به خاطر اهداف دینی است که ما داریم نمیتونیم همه کاری بکنیم خب این نکته بحث از انوان و اینکه انوان گفتیم ملغ کننده هست گفتیم چون در پژوهش انجام شده و هم که میگیید حالا خود کارآمدی یعنی چی؟ کارآمدی یعنی انجام یعنی بهره در یک کلام این, این دید انجام شد من دیگه رفرنس و, و مثنات چه نمیگن یعنی انجام کارها در واقع یعنی تحقق اهداق از پیشین شده یعنی ما گفتیم ماقع مثلا بعد ده تا خودرو من ایران خود رو هستم باید ده تا ماشین در مثلا ده دقیقه تولید کنم در پنج دقیقه تولید کنم تحقق این هدف در کمترین زمان و هزینه، این میشه کارامده این در یه سازمان سنفی دارم حرز میکنم بنابراین کارآمدی سه تا داره یک معلفه کارایی یعنی انجام امور در کمترین هزینه و زمان اثر بخشی یعنی اون تحقق اهداف گفتیم ده تا پنج تا هر چند تا و یک نقطه سوم داره به نام تعادل که حالا این تعادلش می‌رسن که یعنی چی سه تا مؤلفه داره کارآمدی نقطه بس کارایی اثر بخشی و تعادل این تعادل حالا من همینجا اینو باز بین پرانتز ارز کنم شاید بعدن دیگه نرسین سیستم هایی که ما میگیم اصلا سیستم یعنی چی حالا خود سیستم هم تعریف کنید چون کارآمدی تعریف خود سیستم بحث سیستم و نگاهی سیستم سیستم یعنی یک ای که دارای ورودی و یک است و یک خروجی و یک نظام ارزیابی یعنی مثلا شما یه اداره رو که در نظر بگیرید یه سازمان رو که در نظر بگیرید ما یه ورودی داریم آقا منابع مادی منابع انسانی فضای این فضا اینا ورودی این سیستم هستن ورودی این نظام هستن داخل این نظام اداری که میرید انواع ساختار ها و کارکت ها وجود داره کنید بخش اداری داره بخش مالی داره بخش فرنگی داره بخش چی داره بعد روابط این و ها و روابط اینها و یه خروجی داره خروجی چیه؟ یعنی این سازمان یه تصمیماتتی میگیرد یک برنامه ریزی می کند یعنی تصمیم سازی میکنه و تصمیم گیری می کنه خروجی ها این سازمان و نهایتاً سیستم نظات ارزیابی است یعنی این استش بازخورد یعنی که می‌بینیم که آیا این اهداف از بیشترین شدم و درست انجام شده, شده؟ نشده کجا مشکل داشتیم کجا مشکل نشیم آخر پس هر سیستم چند تا روک داره؟ چهار تا ورودی این فراینددا که شامل ساختار و عیضا و رابطه این هم میشه خروجی و نظام بازکن. این هم سیستم می‌گیم. نکته بعدی که چون این بحث ما همه شدقدم هم استفاده کنیم بحث نگرش سیستمی چون در این ان عنوان بود که میخواه بحث کارآواده و منظر گهره سیستمی اعرضز کنیم. نگرش سیستمی یعنی یک نگاه معرفت شناسانه درجه دو یعنی یک نگاه کلنگر دقت بفرموید نگاه کلنگر نه نگاه جزنگر جریان مولوی اون در داستانش داره که یک کسی در تاریکی رفت دست دید که مثلا یه چیزی دید که یه ستونی بعد یوشاش دید که آقا مثلا یه چیز دیگه هست فلان. آخست دید که این مثلا وقتی که روشن شد دید این فیله پس اولش جز جز اینا رو دید ولی بعد که لام روشن شد یه نگاه کلنگر به وجوده که اون یه فیل اونجاست مثلا به این تاریکی بایست ستون نبوده این مثلا خورتومش بوده این چی بود؟ دومش بوده الاخر نگاه کلنگر یعنی نگاهی که کل این سیستم را من البد و الالختم ببینن ببینن خب پس نگرش سیستمی یک نگاه معرفت شنایه، نگاه شناختیه، این نیست وسیله و ابزار تجزیه و تحلیل است. دقیق بفرماییم نگرش سیستمی، ابزار تجزیه و تحلیل سیستم ها، سیستم بحث اینه بگیم یه سازمان این ورودیش، این خروجیش اینم به اسطلاح نظام باز خود ازجابیشه، یه اینه خلاصه ولی نگرش, معرفت، نگرش سیستمی نگاه معرفتیه یعنی من میخوام بشناسم بحث شناخته و اونم شناخت کل نگر نه شناخته جز نگر برم تک تک عیزار رو نگاه کنم ببینم میگن نگرش سیستمی. این یه معلفه چون اینا هم ما برایت هم استفاده کنیم تو بحثمون و اما بحث ولایت فقی ما چون دیگه وارد بحث ولایت فقی با از تمامش بشیم فقط ارز میکنم ما از بین تغریرهای بحث ولایت فقیه تغریر حضرت امام مبنکارمونه یعنی بحث نظریه انتصاب که ولی فقی منصوب من قبل الله هست نهایتاً و تمام اختیارات مفوضه به نبی اکرم را داراست این این عبارت حضرت تمام. تمام اختیارات مفرد به زب نبی اکرم را داراست یعنی به عبارت اخرام تمام اختیارات یک دولت را دارد دولت معنی عام کلمه یعنی یک نظام سیاسی را دارد پس ما تغریرهای دیگر رو قبول نداریم کار نه... نه که قبول نداریم کارش نداریم چون ما مبنامون اینه پیشفرزمون اینه اونا بعد روش بحث بشه که نوعنم اشکال داره بنابراین بحث ولایت فقیه رو که ما در اینجا می‌کنیم ناظر به تغییرات دیگه هست یا نیست نیست ما فقط تغییر حضرت امام رو مد نظر داریم خب این ولایت فقیه که ما داریم بگیم پس ببینید خیلی نقطه حساسی است این ولایت فقیه که حالا ما اگه بخوایم اینو معنای عامتری بگیم من اصطلاح میگم نهاد ولایت نهاد ولایت دارم تدبیلش میکنن به یک شخصیت حقوقی وقتی میگیم ولی فقی شخص حقیقی میشود وقتی میگیم نهاد ولایت یعنی یک سیستم خودش یک ابر سیستم این نهاد ولایت که بالاشن ولی فقی نشسته شخص ولی فقی نشسته این نهاد ولایت مرکز دقیقه بفهم نهایی دستورات و الزامات هست مسئول است دقیقه بفهم ببینید کسایی که شارح نظر حضرت امام بودن در بخش نظریه چیز چی میفرماین مثلا شاگردان حضرت امام آقای منتظری آقای تاریخ خرمادی آقای مؤمن افسا اینا که نوشتن مکتوب دارنو عرض میکنم حالا بقیه شاید صحبت بوده ولی کسی که مینویسه با می مینویسه مثلا آقای طارق خرمادی مثلا از نظر اسلام فقیه عادل مسئول اداره جامعه است مسئول اداره و باید به بهترین وجه ممکن جامعه را اداره نماید و در شکل و نوع اداره از آنچه آن را مسئلت جامعه و موازین اسلامی است اختزام میکنه بعد انجام بده آقای منتظری میگه مسئول در حکومت اسلامی شخص رهبری است و رؤسای قوائستگانه میفرماید که کمک کنندگان به او هستن عزود عبارتشون عزوده البته آیا این از که خود ولی فقیه خودش مباشرته در همه امور کنه ایشون گفته نه معنای ولاد فقیه نیست که خود فقیه مباشرته در تمام امور اجرایی تقنینی و غذایی کنه ما قوه مقنند داریم مجدیه داریم داره داریم اینا از اداشن ایادیش هستن بعد میفهمند که آلا دیگه اینجا به وقت میگذره ولی فقیه منزله منظله رأس بر تمام ادارات و مدیران اشراف تام دارد و در واقع ولی فقیه و در واقع ولی فقیه مسئول عالی و اصلی نظام اسلامی است و از او تدبیر و سیاست کشور و مردم متوقف است آخر حالا ایشون بحث زیاده کنم پس ببینید علامه شعری میگه مشروعیت تمام ارکان نظام به کیه به شخص ولی فقیه حتی رئیس جمهور که به مردم چیز میشه میره کجا ی تنفیزش میکنه در فرمانشته از تمام دقت بفرمایید در تنفیز اولیاشون میگن یه حق خدال من ما دنبش کار میکنم، تنفیز میکنم شما باید کار انجام بدید. قواعد زیرا خودش نصب میکنه، قوام که ورودی و خروجی مسافر شما دست دستلاب شروع یه که اسلامیه را تهیه میکنه. پس ببینید الله منظر اسلام مشروعیت همه ارکان نظام بکیه خود از در میفرموند که تمام اخلیارات مفوضه به نبی اکرم رو داره شاگداشون هم که اینجوری شهر میکنند و مطلب رو بیان میفرموند اما اینا علاوه فقی و شارهان و ماتن و امثال و اما هم نظر حقوقی در مقدمه قاون اساسی ما داریم که میفرمایند که ولی فقیه زامن این پذر فقی بود اما الهاز حقوقی چون امکان داره ما بگن که آقا اینه که شما گفتی الهاز حقوقی که اینجور نیست که حقوقی چیزی گفتن توش ما موندیم نه حالا میرسیم میفهمن که ولی فقی زامن عدم انهراف سازمان های مختلف و وظیف اصیل اسلامی خودشون یعنی وظیف که در حال فرهنگ اختصال فلان که میخوایم بر اونا تمدن اسلامی رو ما باستازی و بکنیم میگه زامنش کیه؟ اسطلاح رهبریه یا در اصل 157 میفهموند که قواه سگانه زیر نظر ولایت مطلقه است یعنی چی؟ یعنی همه در محیط اراده رهبری کار دارن میکنم و باید بکنم یعنی اگر ما دایره در نظر یه دایره کلی در نظر بگیرید میشه محیط اراده رهبری سه تا دا دایره توش بذارید مقان قوه و غذای خلان اینها همه اون محیط اراده رهبری دارن کار میکنن این تفسیر این. در اصل سرده هم که چندین وظییک رهبری رووردن که البتون اونجا دیگه آرای معه است که من واردش دی نمیشم بعضی خود از مامون زبانان گفتن که اینا برخی از چیزایی ذری تقی هست ولی. آقاین دیگه گفتن اینا بعضی گفتن اسمتصادیقشه. بعضی گفتن اینها انحصارات است. یعنی کس دیگه نمیتونه انجام بده اینها فقط وظائفشه اینها رو کس دیگه نمیتونه انجام بده نه که ایشون وظیفه دیگه نداره. لب به کلام نست که از منظر حقوقی هم قضیه تمام است که مسئولیت اداره نظام در واقع با است. پس شرعنش رو از کردیم حقوقیش هم کردیم حالا عیزارم من هم تحریف کردم ما میخوایم چی بگیم؟ ما هم بگیم که من یه مثال کوچیک اول بزنم بعد وارد بحث نظام سیاسی بشه آقا چرا گوش میدی؟ حقیقتا قاعده ولیش رو. توضیح. تاووش میکنم. ببینید یک سازمان رو اگه ما بخوایم اصلاحش کنیم، یه سازمان. اون کسی که در مقام طراح هست، اینجا از میخوام از موصول نگارش سیستم استفاده کنم. باید سازمان رو بذاره جلوش. میگه آقای ورودیاشه این فرآینداش یعنی اما ساختار و روابط و اینهاشه این خروجیشه اینم نظام بازخوردشه این میشه نگاهی سیستمی یعنی نگاهی فقط ابزاره خب با این ابزار چه کار میکنه هر جا احتیاج به نوسازی دقت کن، بهسازی و احتمالاً مهندسی مجدد سازمانش داره بعد انجام بده اون شخص که مدیر سازمان هست وظیفه داره با نگرش سیستمی سازمان رو بذار جلوش بگی آقای های منه این های منه این ساختارمه اجزایش روابط اجزا اینه خروجیام اینه نظام ارزیابی بازخوردام اینه و بر اساس این نگرش سیستمی یا یعنی این نگاه معرفت شناسی درجه دو که داره از بالا نگاه نگاه کلنگره نسبت به نو سازی به سازی و اگر خیلی خراب بشه جایی نو سازی مهندسی مجدد سیستمش چیکار کار کنه؟ اقدام کنه حالا عرض ما چیه؟ ما میگیم عالی ترین مقام نظام سیاسی کشور که رهبری هست با اون ای که عرض کردیم همه لازم حقیقی همه لازه به اسطلاح شرعی وظیفه این نهاد ولایت از همان شخص اینجا مطرح نیست دیگه نهاد یعنی این بخش یک خودش ابر سیستم هست در سیستم کلانتریه باید نظام جمهوری اسلام رو دائم رصد بکنه و ورودی ها ببین تو ورودی ها ما چه مشکلاتی داریم خروجی ها و این ها رو بشینه اگه احتیا بشینه گفتم یعنی خودش نیستا یعنی اون سیستمی که به عنوان ابر سیستم نهاد ولایت در واقع به نوسازی به هر جا مشکلیست و اینها رو که میبینه که سیستمش در واقع ناکرامد لایم میزن مردم ناراضی هستن بعد اینها رو اصلاح کن فتح نمی‌شود ما بیاییم نظام را نظام سیاسی رو تحویل من موسعی بدیم من احمدی نجات بدیم من روحانی بدیم من رئیسی همسال هم حرف نکته اینجاستیم یعنی بگیم آقا ما مردمی کسی رو انتخاب کردن ما هم تنفیزش کردیم. خب حالا امروز آقای احمدی نجاد فردا آقای حسنی فردا حسینی تقیی نقیی نه باید یک مرتبه نظام تصمیم سازی دقیقه بفرمید و تصمیم گیری یه مرتبه دیگه بالاتر به کجا برسه؟ یعنی تو خود نهاد ولایت بعد این کارها صورت بگیر پس آقا رئیس چمور چه کار از اونها قوه مغارچه کورس، بعد بیاد در راستای این سیاست‌های رهبری چکار کنه؟ قوانین بذاره. قوه غذای در این راستا کار بکنه. نه اینکه قوه مجریه بیاد یا آقای حالا به هر لطایفی هست رأی بگیره. بیاد مملکت رو به ایبری بریم. 8 سال مملکت معطل این آقا باشه. یا فرض نفر بعدی رو دیگه اون این را اشتباه بود که رفتیم 8 سال به خود و وقتمون تلف کرد. ایبری بعد نه سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری مملکت باید با اون نگرش تحلیلی که از نگرش سیستمی تحلیل بشه تجزیه بشه و مملکت بر اساس اون اداره بشه باز ما تو بحث سیستمای چیز داریم این در بخش تعادل که از کد ببینید سیستم ها به طور کلی یک مشکلی که دارن این در بخش فیزم گفته شده در واقع مثل سانتریفیوج میمونن سیستما که میچرخن آماده ای هستن که از هم بپاشن اگر یک محور تعادلی نداشته باشن محور تعادلی این سانتریفیوج نمیچرخه یه محور داره مثل قطب ها میمونه مثل شما فرض کنید سنگای قدیمی آسیا بود یه قطب یه چیزی وسطش بود این میچرخید دورش قطب های نظام اسلامی نظام نهاد ولایتش اون است که باید در واقع این سیستم رو راهبری بکنم راهبری خب در چه سطحی؟ شام یا در سیاست ها بنده ارزمین اینجا اینجای نمیخوام ارز کنم وقتی من نگرش سیستمی دارم و میام تردنیم تا یه جوزهای جز جز جز ریزی ما مشکل داریم نه بحث حالا به سطح قیمت گذاری مرغ و تقم و مرغ و بحث اون نیست در سطح سیاست گذاری که الان داره اجرا میشه البته ولی در سطح بر یعنی حتی ما ارزش این است برنامه‌ای تا حد برنامه 5 ساله بعد توی نهاد ولایت طراحی بشه من رئیس جمهور شما رئیس جمهور موظفم اون رو اجرا کنم نه اینکه رئیس جمهور بیاد مثل رئیس جمهور قبلی بگه آقا اینو مثلا مصوب بوده شورای یعنی نهاد که به اصطلاح شورای نگهبان نهاد مسئول قبال راهبری دیگه یعنی اوکی الهواز چیزی بندازه که ما بگم این به درد اون ما اینو اجرا نمیکنه. حق هم چه کاری نداره این مستب مستق نهاد رهبری باشه کسی حق خروج از اون نداره هم مقب انند هم ماقب این دنیا باشه سیستم که میگن حتی ما تخلقات طرف هم باید اینجا بررسی میشه بنابراین اگر ما این مجموعه رو با نگرش سیستم ببینیم تو سیستم اون رو جز وجود هر جا به نوسازی پای مسازی کنیم این کار کارآمش میکنیم اینجا مشکل داره به این کار اینجا یه مثالم بزنم و تموم بشه بره این بخش اگر بازخواهی کره جنوبی در 50 سال گذشته میدونید که اقتصادش مبتنی و کشاورزی بود یه زمانی تصمیم گرفتن که اقتصاد مبتنی و صنعت الان ببینید کجا هستن الان ببینید کجا است؟ این تصمیم گیری که آقا ما میخوایم صنعتی باشیم یا کشاورزی میخوایم بشیم این چیزی نیستش که رئیس جمهور بیاد 8 سال شعار بده هر رئیس جمهوری یکی دیگه بیاد تغییرش بده این باید در نهاد ولایت یعنی در مقام عالی برنامه ریزی کشور تأثیر بشه که آقا رو کردیم ما مثلا روکش سنتی است این دوستداری سیاسته بعد بیاد برنامه هم نوشته بشه و تو همون نهاد نکنی بحثش مثلا شخصی نیست که مثلا خود آقا اتفاقات مثلا وقت بزرگ بیشتر برنامه بنویسه نه اون سیستمی که حالا ازمیکنم باز میاد میشه برنامه های متناسب با اون سیاست می نویسه. بعد میمونه فعالیتاش فعالیتاش در اختیار دولت هاست دولت ها این دولت ها بعد میه فعالیت تا تعریف کنه این فعالیت ها در این فرندی باید بیاد همه منطبق بشه با حتی اون برنامه ها این جور نباد باز باشه پس همه میشن عیادی و عزاد این بازوی نهاد ولایت که کارو دارن انجام میدن و جلو بره من فقط واسه اسخایون تو اینا نگم مثلا بعدن این وقت برم چیز بگی اینم عرض کنم سه چهار تا چاله شاید اینجا دوستان ما بگن که شما خواهید داشت اصلا من دیگه وقت ندارم خیلی دید مسئله ریزشو بگم آره بخوای بذارم آره بذاری بعدم بگم من نم فقط دو تا کلمه دارم 200 تا کلمه دارم من اینم بگم تمومه فیضاش نمید بجا بس که شما بگم بله بله چون خلاصه بگید من این تکرار فقط چون دفتر دخل مقدر می‌کنن من خیلی کوتاه یه روسی از مصالحی که استاد سردارت وارد می‌کنم از یه طور اینجوری حالا معمولاً دقیق خیلی کار خاصی ولی که حالا خیلی کوتاه و نسبتاً خلاصه اول این طرحش بود که این عنوانی که برای برای شما کردن به نوعی یک پیشفرس نباید ارغا بکنه و توی پیماچه های اجتماعی تحصیل ثابت شده که زرفه ایمون توی کارآمدی نظام داریم بعد دو مورد رو فهمدن که به نحوی سرایت دارد ناکارامدی که فهمدن که بسخایی سرایت ندارد دو مورد رو فهمدن ناکارامدی سرایت ندارد یکی که البته وقتی دیگه اگه این گفتیم بحث اقتصادی به سمتشون کار اومده لزومند بحث سیاست مثلا سرات نداره تضمین که ناکارآمدی یکی نظامی که منتسب به ایدئولوژیه به اسلام این لزومند منتظر یعنی این ناکارآمدی تعریف از به خود ایدئولوژی به اسلام نیست یه مورد فرمودن که سرایت دارد که اون بحث کارآمدی بود که فرمودن کارآمدی به عمل مرتبط هست این مسئولیت عقلانی بسره و لذا، اگر شما تو مخشیریت و تو کار آمدی نرشده باشید، اون بگونش دیگر اولیه سرایت میکنه. و بعد از یهت اهداف دیری فرموندن که خب احتمالاتی برای ما کار ما خواهیم داشت بخواهیم که نبیتونیم اخواه داشته باشیم، نبیتونیم فرقیم داشته باشیم، بعد اصل و حاضر بحث معهدفه‌های کار آمدی رو فرموندن، کارایی اصل بخشید و تعادل تعریف سیستم ار نگارش سیستمی رو با هم فهم یه دانش در حضور دومه و نگارش سوال نگره که افضار پیزی و تحلیل سیستم ها هست و بار درست به بحثشون شده تو بلایت فرقیه که بر اساس نظریه حضرت امام خبتنان نظریه شون رو استراح درایه کردند و منظورشون هم حضرت بلایت فرقیه نهاد بلایت هست نه یا به نوعی یک مثلا بخواست یعنی به نوعی شرصیت اشانه که اساسی داشتن که همون فارق از یعنی نگرش سیاسی و نظری قانون هم رو داریم که که بود خیالت رو برای بلیه قائل هست و نوشته اساسی و به نظرم تا منون کلام از دوستادی بود که نهاد رهبری هست که توی این نظری سیستم ها باید تمام تصمیمگیری گیری رو اونجا به استرابه خود قصد بکنه و بعد قواهی صرفاً اجرا کننده هستن این حالا اگر هزه توستان دقت بفرمایید عرض من اینجا اینجوری میشه میخوام بخواهم کنم این استش که در ذیل نهاد بلایت باید ما سازمانی داشته باشیم سازمان برنامه ریزی یعنی از زیل رئیس جمهور بعدی این خارج بشه و سازمان مشابه زیاد داریم. این سازمان هم هم و بشه بازوی نادبلیت و نظام برنامه‌ریزی برنامهریزی کشور. عرض کردم در سطح سیاست گذاری و برنامهریزی های کلان من برناطت برنا پنج ساله ولی فعالیت ها یعنی ریز برنامه ها و اختیار خود دولت ها با برنامه ها نگارش بشه و حتی بره تو اون سازمان برنامه‌ریزی که زییل رهبری من پیشنهاد میدم اونجا ادیت بشه و چیز ویرایش بشه. ببینن که اگه بگن آقا این کار مثلا شما گفتیم فرض می‌کنیم. یا گفتیم چیه کشور توسش بر اساس صنعت باشه. شما داری اینجا مثلاً داری کشاورزی، داری چی کار می‌کنیم. مثلا فعالیت رو جوهر یا یا گفتیم ترکیب باشه. این سهم این چقدر سهم اون چه یعنی کنده شورای نگهبان برنامزی میشه. این سازمان برنامزی زیر نهاده‌ی ولایت. این چند تا سامره داره. یک این دقت پس ثمرات این پیش‌نظریه میدم می نهاد ولایت از جایگاه بعضن سلبی که فقط بگه آقا این کار نشود به یک جایگاه کاملا ایجابی میرسه یعنی بعضن سلبی و بعضن ایجابی جایگاه کاملا ایجابی میشه یعنی برنامه‌ریزی و تصمیم سازی و تصمیم کلان کشور دو برنامه ها از سوباط تفسیرناپذیری و فهم مشترک برخوردار خواهند شد. یعنی این برنامه ها مشخصه مرجعش هم مشخصه ها برو بپرس دیگه سلونی قبلا تفقودنی آقا میگیم مثلا فرانچی چی خوبه بپرس دیگه خودشون مرموماتن و همه این ها نشستن تو نهاده بلاید دیگه هر کس از زنده خودش نمیشه یاره من بره یه طرف بکشه از یک تفسیر ناپذیری رؤسای قوای سگانه صرفا به دلیل تدوین برنامه های توسط هست دولت پیش از خود نمیتونن زیر چار برنامه بزنم بگم اقا این برنامه پنج ساله دولت قبل میشه دولت قبل سکولار بودا ما قبول ندهیم مندازه کنار نمیتونه این کار بود چاینی تحصیل نهاد ولایت نوشته شده چهار باعث یک پارچگید و همفضایی دستگاه ها میشه معلوم میشه که هر کس جایگاهش کجاست تو فرهنگ الان شما بایدن برای بودجه کشور چون من سابقه دارم تو این دستگاه هر کسی در برای خودش دنبال یه بودجه میگره ما اومدیم کار فرنگی میکنیم و یه تبلیغ حضر شما نگاه بفرمایید من چون یه زبون مسئول داشتم 20 چند دستگاه دارن کار تبلیغی میکنن هر کدوم هم با یه نرخ خب کی چه میخوایم درستش کنیم هیچ هیچکسن دورش نمیرسه هیچ دولت یا یه دولتی میاد راستیه به قول امروزیات این دست‌ورنده یا چپیه اونم دریا میگن آقا اینا میخوان مال ما بلای بنهاد به لاتس اصلا یک شخص کار نده و نهاد. باعث یک پارچگی و هم افزایی دستگاه ها میشه. باعث تمرکز برنامه‌ریزی راهبردی کشور میشه. این دستگاهه علیزه طویل بیخود که نمیاد میبنده درشو بسوی احمدیجات ما کوچیکش کرد. طوری که ما تانش کرد. طوری که ما دو تاش کرد. یکی یک یکیش کرد. آه تا کی ما می اینو بزرگش کردیم؟ به لحاظ منابع انسانی و کالبدی یعنی فضا اینها بسیار صرف جویی خواهد شد به لحاظ آدم به لحاظ هیئت مدیره مدیرعامل، مدیره عامل فلان کلی این بحثا جمع میشه یک نکته مهم برنامه کشور تابع افراد نخواهد من رئیس جمهور با یه لتاپ رای میارم میکشم اینوری آقا به سمت غرب یکی دیگه میاد میتونه به سمت شرق یکی به سمت هوا آقا همه جا میشه یک نظام دریم نهاد ولادتینو گفته بعد اجراشه و بعد اجرا بشه و نکته آخر تصمیم سازی و تصمیم گیری متمرکز اجرا غیر متمرکز است اجرا غیر متمرکز است و آخرم که دیگه من چی گفتم گفتن دیگه همش بگو من همش بگم که دیگه بعدش دیگه چند تا چالش داشت تو ذهن شما بشه یک آقا این که میشه دیکتاتوری چه دیگتر تولی دیگه ببینید اصلا نهاد ولایت که ما میگیم توی مبانی میگیم یعنی نها... نهاد تدبیر یعنی نهاد حکمت یعنی نهاد مسلحت یعنی نهاد علم این چیزی که من دارم پیشنهاد میکنم سازم. یعنی تمام نخبگان علمی حوزه هر کس که هست تو هر بخشیش تو هر میزی که میشینم یعنی ما دیگه نخبه تر از اینا نداریم توی این نهاد علیت جمع میشن و برنامزی کشور دارن انجام میدن. و با شخصی دونه شخصی هم عوض نمیشه کار دیکتاتوری موقعی است که من شخصی یعنی من شخص حقیقی بیام بگم وقا من میگم اینجوری بشه ما اینو نمیگیم ما داریم نهاد علیت که رستش ولی فقیه این نهاد یعنی نهاد علم یعنی نهاد تدبیر یع یعنی این نکته اول یعنی جزمندیی نیست جایگاه بحثه و انجام میشه من اینجا گفتم مجموعه متشکل از دانشمندان علمی مورد اعتماد رهبری است میشینن در اقتصاد میکنن ما الان تو این مملکت نمیدونیم توی اقتصاد یقه کیو بریم بگیریش شما تنسی میویم ما باقیا همش مخالف کنم. تو اون میگیم آقا کی میگه من جمعه مثلا بفهمیدم چه غلطی بنزین وزید یکی میگه آقا نکرده بودم یکی میگه والا آقا ما یقه کیو بگیم تو این معنای اقتصادی این باید مرکز نهایی تصدیت نصم و دستورات روشن باشه که این میشه همینجایی که من ارز کردم نکته دوم این استش که همونجای که ارز کردم سطح فعالیت ها به خود اداره اعداد... چیز میره این تمرکز بیش از حد نیست سیاست ها برنامه ها، فعالیت ها تو دو خود دولت ها که البته تو گردشش میره چیز میشه و یه نکته مهم نهادهای انتخابی یا رئی رئیس جمهور دیگه ابعین میره نه به نظر ما نمیره. رئیس جمهوری طبیعتا می تواند کاندید بشه و بیاد بالا که بزنه این ساختار و این برنامه ها کنه اجرا کنه پس بحث انتخاب رئیس جمهور سرجاش هست کسی نگه آها وا اینکه میگید دیگه خود رهبری وارد اجرا میشه رهبری تاکید داره وظیفه من ورود اجرایی نیست وظیفه من ایشون در یه بولات جالبی داره دقت بکنم من اینجا بخونم ایشون میفهمواد که حضور رهبری به معنای این نیست که سیاست ها برنامه ره رح... ها برنامه های کلان رهبری در کشور مد نظر این هیچی برنامه ها را داره میگه مد نظر قرار نگیرد بلکه حضور رهبری در همه بخش کشور به معنای حضور سیاست های رهبری است که باید به دقیقه داشت یعنی حضور نرم نه حضور سخت برنامه ها باید همه اجرا و همه باید اونا رو اجرا کنم پس نهادهای های انتخابی سر جا خودشون هستند مجلس همونجون هست فقط مجلس میاد در راستای سیاست های کلان مملکت خدمت میکنه. رئیس جمهور همونجور و الاخر آقا جایگاه مردم چی میشه؟ مردم این همون سابق بعد رأی بدن که جایگاه رئیس هیچ خدچه وارد نمیشون بیانند یعنی ما اینجا مردم همون منها سابق به اون کاندیدایی که میتونن این برنامه رو اجرا کنن بهش شون امید. هر کدوم بهتر بودن، فعال‌تر بودن برنامه‌شون اجرا کنند. اون تعادلی که گفتم، نقش متعادل کننده این ابرز این سیستم چیه نقش متعادل کننده رهبری است. یعنی نقادی که عرض کردم به رسالت ولی تقی متعادل کننده کل این نظام اسلامی سر سیستم است. و به عنوان نکته آخر چند تا نکته آخر شده ما در این سیستم حتما احتیاج به سازی داریم. همین مدرسه شما که بحث فقه نظام ساز هست بچه های فکری بچه های اجرایی بچه های سیاست گذار احتیاج به کاتسازی برای نظام برای این منویات اسلام چون وقتی میگیم منویات این نهاد یعنی منویات اسلام در واقع احتیاج به داریم و در آخرش هم بحث سالاری که دیگه اینا بحثه بعدیش می و علیکم و رحمت الله. یه هم سال فقط حالا من یه یه سال باقی که شده و اینکه کیفیت مشارکت دهی مردم در غلصه سیاست ها رو تو این مدلی که جایی جمعیز فهم چیست و اینکه آیا ما اگر از مشکولیت رو که خود اصلا هم اشاره کردن روی موقع مقبولیت ببریم و وقتی ما به این نفع حسنی گیری رو از بدنه به اصطلاح نمایندگان مردمی یا مردمی جدا بکنیم و بیاریم در عرصه نهاد بلایت قرار بدیم؟ مثلا موضوع با چی میشه با تحضیب حوزه تخصصی از و آیا ما همچنان در اون ای یک نظام توتالیته بودن هستیم یا نیستیم و آیا مفاهیمی که باز اوستاد مثل اینکه نهی درایت هست، حکمت از، به خاریلی مسلحت هست اینا میتونه این جن شبهات رو دفت بکنه یادم این ها رو رو بیماروی نفرمان شدید با سکت بودید شد بخشم بسید شما بسید شما از شما بسید شما من خیلی بود تا خیلی اولی که دارم در این بحث اینه که اولا قطعا استفاده از منطقه مثل منطقه سیستمی به جهت بود کرده و به جهت جامعیتشون در تدبیر برای اداره عمر امومی بی تردید اینها راهکارهای جدید و مفیدی هست. اصل استفاده از منظر در واقعیت سیستم در اصل این که اقتدار عالی که اون اقتدار عالی در شکل اقتدار قضایی، اِثاب و اجرا متعلق و فقیه هم هیچ ایرانی وجود نداره و کاملا درست اما مهم اینه که تلقی ما از سازمان برنامه و گروژه چی باشه اینکه که قوه مجریه الان ابزار اصلی قوه مجریه در واقعیت همین سازمان برنامه مجزیه یه نگر ما بگیم قوه مجریه مثلا غزارت فلان و اینه نه اینه هیچ کنون نیست واقعا قوه مجریه واقعا به اساسا که خدا جوابا طرف باشه قوه بوجه یعنی سازمان برنامه بوجه هر هر کارشان نخواهی کنترل بکنید طبعاً یک برنامه نخواهی بوجه و این خلاصه تو سازمان برنامه بوجه ختم میشه من مشکل اینه که سازمان برنامه بوجهی الان ما واقعاً در حد هم برنامه رزی اجرایی و بوجهی اجرایی باشه و الان مسئله ما بودن اقتدار سیاست بزاری اومدو برنامه در اختیار رهبری به نظرم نیست یعنی اگر که رهبری خودشون مسئول برنامه بونجه باشند که بگیم ضرورتن کار بهتر خواهد شد نه البته استفاده از روش آقای پیشناده دکتر موسفی جهت انسجامش، جهده برامریزی کردنش اینا نکات خیلی خاص و خوبیه و درست. اما این که بگیم رهبری میدنه رهبری سیاست به کلی نظام رو مشخص میکنن خطوط کلیه نظام رو هم در قالب در واقعیت سیاست های کلی برنامه و سیاست به کلی قانون گذاری و اقتصاد اینها مشخص ها رو خب این که برنامه اجرایی و جوزی اینها را دولت ها با تمشیهت بکنن و به نحوه حسن پیش ببرن این نکته که الان توی نظام جمهورستانی تقیلا زمین مونده است یعنی این که واقعا سازمان برنامه چقدر نسبت خودش رو با اسناد بالا کامل کرد یا چقدر واقعا ایمان داره بکنه اسناد در عمل میکنه. کنه یه وحث دیگر است خب رحبرده خاله به حکم حکومتی برای آزام برود جوزی همینه نزدن که برود جوزی کارن برای همین اخیرا همین امثال رحبری جید که مول سر بحث من به سری مثلا که بسی اونهای مجلسی سی تذکراتی دارن نمانه بکنم سوال نکرد تو بحث منجه نکرد برای خب رهبری همون زدن آیا من نکتابند آیا کتون رو که آیا ما تمکین سیاسی و عمر سیاسی مرمون شده یعنی واقعا می محلهی رسیدیم که فقدان اخلاق سیاسی و فقدان سازم قانونی کافی اجازه میده که قوه قجریه بتونه تمکین نکنه یا واقعا مشکلی که ما اینو بکنیم ببریم زیر نظر که حالا هم به چالشش خودشون اشاره کردن با این مشکل هم ممکنه مخلوم رو ببشیم که حالا با یک خ به یه یه رو برشیم که واقعا در اجرا نتونه اون طور که دلش میخواد هدفمند عمل بکنه به همون اهداف ها، به همون اهدافعای که رهبری تو فادر سیاست کلی نظام و سیاست برنامه های توسه در واقع املاع میکنن به همون هم دولت نمیتونه چون اون که تو این برنامه امسالش یه جور باشه سالش دیگه باشه یه باشه و سالش یه جوره حالا از یه دولت تا دولت دیگه که من احساس می‌کنم که علاله رو همه‌ی مزایی‌هایی که دردیده این مطلب وجود داره که ممکنه دوچاره این مسئله نوشیم که در واقعیت قوه‌ی موجلیه را تهدید بکنیم و از اون طرف هم به نظرم که این مشکل از سازمان برنامه بود جزی نظر جمهوری جمهوری جمهوری بودن نواشه چون هم برنامه برنامه برنامه این کلال کشمت رو در حال سیاست ها میکنه اما مثلا این که چقدر تمکین میشه از طرف همه به مجریه و چقدر واقعا ضمانت اجرا داره که اگر تمکین نکردن پاس با باشه اگر همین بگن من های د که از نظربان کفایت میکنه و اصل ایده تمرکز بر گرش سیستمی و ارتقاء سازمان برنامه میگیرن کشور ما من هم معتقدم که یکی از ضعیفترین و شاید ضعیفترین سیستم های برنامه توسعی ای مالوان برنامه توسعه ماست. اما اینکه این ایراد مال زیله نظر رهبری بودن باشه به این تبرید یا آتونه کردم که، نیازه حالا مشروعیتش خب مشروعیت همه این نهاده هم تعلیم در واقعیت این یه نهاده برای من همه یه هایی آسف خودن خیلی ممید <تصفح> ببینید ما زیاد دعواستانی نداریم حالا این سازمان برنامه جا را عرض از ضد دولت یا نمید اصلا باش عرض من این که برنامه ریزی غیر از سیاست است قدر الان آن کاری که وضعیت موجود داره میشه سیاست بزاریست که رهبری در قالب سیاست های توسعه ارلاق میکنن و اجرا میشه من دارم میگم یه سطح باید پایین تر خود رهبری دارم حضور سیاست ها و برنامه های رهبری یک سطح بیت پایین تر برنامه های توسعه میگم در نهاد ولویت باید نویشتی باشه اصلا ما میگیم حفظش هم ما اینو ازش میگذاریم آقا اون سازون ب برنامه ای اداره ای کشور نظام اسلامی و توسط نهاد ولایت نوشته بشه ارز کردن این منظوم نیستش که شخص رهبر خوش بشینه به نیستان دارم نهاد این سیستمی که یه عبر سیستمی این باید توسط این نهاد انجام بشه و اون سازمان اگه حالا پس اون سازمان اونجا هست بیاد ریز فعالیت های سالانه شو بنویسه و ارائه کنه نه اونا باشه خوچه شو تخصیص بدن کاراشو بکنن. ولی برنامه‌ریزی دست دولت نباید باشه که فردا این دولت عروس دولت بده آقا اونها بیچ کردن بی خود گفتن آقا رو به قد ما رو به شهر می‌خوایم بریم از صد اون یکی میاد رو به شهر می‌خوام هوا بریم بعدیش این روز می‌خوام زمین رو سوراخ کنیم بریم آنکه نشد که برنامه سیاست‌ها و برنامه ها یک امری که باید به اصطلاح دوام داشته باشه از معاطیر محمد پرسیدن که رخصوزیر فکر کنم از 100 سالش در ممار اقتصادی مالزی پرسیدن مالزی کی شد مالزی من مصابه شدیدن گفت 30 سال ما یک حرف زدیم 30 سال ما الان به چند سال میرسه یه رئیس میاد حالا اگر الان 8 سال هست بیادیم یه سمت دیگه می کشه. بنابراین من چیزی ندارم تسلوبی ندارم حتما ساتون برنامه بشه، نه حضر بشه ولی این سازمان برنامه ریزی و سی هم سیاستا هم برنامه ریزنالی تفصیل دیگران انجام این نکته نکته بعدی این که حضور رهبری اگر حکمی کردن اینا ها دیگه اصلا پرون نگه سیستمی حل میشه گفتم به کار منجر میشه بعد همه حل شد لحاظت ساخت داریم یعنی رفت و برگشت‌ها و, برگشت و باید کاملا مشخص باشه چه جوری میره چه جوری برمیگرده برنامه کجا میره کجا برمیگرده و تخلفات احتمالی این فرماشه شما چرا کاملاً درست سیرا راهبه دستور رو اول نمیکنن رسما اول نمیکنن خب این بعد سازوکار مشخص باشه که اگه منو موسی نشازم عمل نمیکنم چی میشه اینا بعد اصلا خون نگرش هستن همه اینا در میاد چون باید کلی رو نگاه می‌کنید دیگه همه اینا در بعد رو گفتم بعد یا نو کنیم یا به سازی کنین یا مهندسی مجدد بکنید اینها باعث میشه که ما همه این مسائلمون توجه میشه که حل بشه. البته آسیب های احتمالی داره همچون عادت استاد نادرست کردی که فرض کنید که امکان داره شامی مشارکت مردم کم میشه. ولی لب مشارکت از این تازه تیری کمتر نخواهد شد. مردم آقای کارآمدی ببینن نظام اسلامی، هر نظامی حالا تو دنیا از کدام جمال عبدالناصر با کودتا خودتا او سر کار ولی مردم میپرسیدنش. کارآمدی داشت برای مردمش جهان عرب میپسند دیدن. می دیدن لذا ما نگاران مشارکت مردم های کار ببینن قطعا مشارکتون ده برابر خواهد شد ولی یک انسجام ببینن در برنامه ها در سیاست ها در رفتارها. ها الان در... یه تبلیغ هم شما مثال ارز کدم بیشتو چند دستگاه با چند نخ مختلف دارن تبلیغ اضامه کنن مبلغ اضامه کنن این نبرای یک جا یک بار برنا برنامه داخل کشور با حسن آقا داخل کشور کوتاه‌مدتش با این برنامه‌ریز با این خب چرا نداشت بیشتر چند دست دستگاه هم هم کارمند و دفتر و دستکش مدیر مدیرعامل و هیئت مدیره و هر کدوم ساختمون بگیر چی بگیر بودجه بگیر اینا تو اون پلان برنامه‌ریزی اگر کار بشه همه اینا در میاد و درست میشه و ما یه برنامه‌ریزی صحیح داشته باشیم قوه مقننه بله قوه مقننه دیگه مثل حالا که الا هست پرتو تو плана نمیره بزنه یهو یه چیزی رو وجود تاثیر کنه آقا فلان نه مثلا زهربری گفته که آقا زهربری اینه واسه نهاد الهیاته نه از نه راهبری وارد نه نهاد نهاد راهبری میشه نه, نه. ببینید این نهاد الهیاته تاثیر می‌کنیم میاد ست شاخه زیرش قوه مجریه قوه مقننه قوه مجریه قوه قضاییه این از این نظر راهبری یعنی سیاست رو نتیجه قانون احسان مثلا اگر رهبری یعنی نهاد ولایت ما تصمیم بگیره کشور بسناتی بشه یا با این درصد صنعتی بشه باید قوانین مرتبط با این نشه دیگه نمیرن دنبال کارهای بیخود و حذف میکنن قوانین زائد به قوانینی که چیه حابند کار هست قوه قضایی در این راستات برو قوانینش اصلاح کنه ولی اگر نه الان به من میگن او این الان این جوریه این من به من می دن میگن آقا قوه تو این آقا بنابر سواد و توانایی و چیزی که داریم میره دنبال کار اون بالا سیستمی نیست رستد بگیر بگیر بی بی این رو راست کنه و مداوم میاد میگه یکیشونه جلو بیا بسم الله الرحمن چی کاری مثلا دا دا داری با داریم کنیم اصلا کجای با سر من خودم تلویزیون دیدم آقا اون که حزات چیز اقتصاد مقاومتی من خودم دیدم با چشام خودم تلویزیون یه ورزشگاه افتتاح کرده بودن سونا جکوزی طرف باقوا دراست قوام مقامتی ما اینا اومده اینورا افتتاح کردین جکوزی سونا بودا چرا چیزی نزنه علی مثلا شوخی ولی من دیدم اینا رو یعنی هر کس از خودش میاد میچسونه حرفا رو اونجا ولی یک نظام حالا من بحث ازیابی رو و نظارتو نکردم قرار شد یه چیز دیگه لازم شد نظارت و ازیابی. هم باز تو همین سیستم تو همین سازمان میگن هم می باید انجام بشه و کشور از انحراف جلوگیری بشه همه میشن در خدمت این سیاست ها و برنامه که توسط نهاد ولایت با اون که ارز اگر اجازه ببینیم دوستان سوالی چیزی داره آیا یا سوال <تصحنت> ببینید سیاست گذاری بحثای در واقع سیاست شما اینجایی در نظر بگیرید؟ مثل چراقه هایی میمونه که توی یک اوتوبانی میزنن اگر... اه... یا جاده اگر این به اه... اسطلاح چراقه نواشه شما جاده رو گم میکنی پس چراغ چراقه ها خود هم خاموشه دیگه جاده نمید جاده بودای کنو برمیپیچه چراغ که میزنن معلوم میشه شما از دورم می بینیم. آقا این جاده چقدر پیش دارهشه او توان ترام شب تشید میارید و, و, می و شاید تمام دوراش دارید می بینیم. سیاست ها اون چراغ های راهنمای حرکت کلی یک نظام هست. یا, یا یک سازمانه فرق نمیکن حال ما چه نظام کلان سیاسی این چه نظام حرکت های کلی پسا میگییم که آقا ما برنامهمون توسعه صنعتی است این چ سیاست کلان نمیشه حالا در راستای این سیاست کلال ما باید برنامه تعریف کنیم مثلا میگیم احیای معادن ظرف مدت پنج سال باید معادن کشور از مثلا فرص این کلال چن داره فعال هست بعد به هشتات درست زرف پنی سال برسد یه برنامه پس سیاست ها میشد اون چراغ ها برنامه ها مثلا میگیم آقا ما الان میخواییم مشهد بریم حالا راه نوام مشخص چراغ ها زدیم با قطار برم، با هاپ ایما برم، با هاپ دو چرخه دوشرخه برم، پیاده برم، اینا برنامه هاش میشه، آج خواهیم توی همون نسال روش هم بگیم. انا فایت اما به بله، ها، مثلا اگه ما دین گفتیم احیای معادن از هشت، از 40 الان 40 درصد معادن فعالن الان مثلا همین دیروز بود م... وزیر معادن فرمودن که 27 درصد 28 درصد معادن فعال نیستن حالا با یه من الان اشیادام مثلا اگه بخی برنامه ریزی کنیم میگیم آقا این معدن دست بز برنامه ریزی میگیم که آقا بعد 100 درصد معادن ظرف 5 سال بعد فعال میشه. درسته حالا ریس فعالیتش چیه میام میگم این درصد فرض کن هزار میلیارد تومن تو سالیانه من رئیس جمهور میام میذارم هزار میلیارد برای به اصطلاح احیای معادن به صورت فاینانس به صورت بای بک هنگی که خودشون دارن یعنی به صورت قراردات های خاص یا قضا رو هستنه یا قام مشارکتی هر چی میام تو میگم مثل امسال سال سال و هزار چارسد یک این تومن برای احیا برنامهش چیه که آقا مثلا 80 درصد بشه به 100 درصد اصل سیاست چیه توسعه صنعتیه این مراتبش میشه بفرمایید بله من گوشم گرفته یه ذرهای بلند بفهمیدم بفرمایید در پنوموگنیک باید باید یک سیستم اولیه ای داشته باشیم که لحظه ای که که این سلام. در رابطه با درخواست برای اضافه استادی بحث من یکه بوق من کد سازی کردم. پاسپورت تهیه. همچنین بوده برای بیشتر به عادت. و شما معید هستید هستی ببینید در نگاه سیستمی گفتیم که ما با این نگاه سیستمی میفهمیم کجا خلاع داریم ارز کردم مهندسی مجدد باید بکنیم یه جایی خیلی خرابه مهندسی مجدد باید. یه جایی کمتر خراب نوسازی میکنیم یه جایی خیلی کم خراب بهسازی میکنیم دقیقه ایده رو میگیم نه، حالا اینکه نشده، ما الان کار ندارم شده یا نشده. ما داریم اصل ایده رو بریم میگیم حالا اینکه در مقام تحقق و خارج کاری انجام شده یا نشده اون یه بحث دیگه است، الان ما بحثمون نیست ما الان نمیخواییم نقده عمل کرد بکنیم ما داریم ایده رو میگیم میگیم این ایده، همین فرمای شما با این نگارشی که من دارم مش سیستم سیستمو تجزیه تحلیل کردم یا بعد نوسازی سازی کنم خیلی خرابه بعد مهندسی مجدد بکنم کمتر خرابه نوسازی سازی میکنم کمتر خرابه به سازیش میکنم الان مثلا مینم رئیس جمهوری بعد این کاراتوش اتفاق افت تا این مثلا این با این سیستم موجود در بیاد بعد دوما دنبال سازیش قانونشو ببرم کاراشو انجام بدیم مرتبش کاری مناظرهش کنیم در در رابطه با اینکه باقران خود حکومت اسلامی یکی از بودی کنه که خود تامهن رو روشت یعنی از خود روش این خود. بود بود. در خود میتزامه با اختیار خودش بیاد روشت میده بولو مثلا این قطعه پرجمان اینا آقا خودش رو بوده سیدیو به برای با این مردم خودشون مطلطقی توزن که با اعتماد برای این که شما میگید یه طرف این مسئله کنند تفتاشوی شما باری خب، الان این مردم چه کاندیدای خود بیاده که خواهد کنند کاندیدای بعد، حالا خودشون الان وقتی بیادید دویه تارتونگر این کاندیدا <متخلا> خبه اخرین اون سیاستها از نماز رهبری میشه این الان اون مردم اون قلوتی رو گوزه بعد این رشد بود مردم یک رشدی آره دارد خبه اخرین اون سیاسه های کلگیر کاراش انجام میده از نماز رهبری شده نمیدونه که از این تخطیق واسه این جا را دمسای تخلقا بشه بشه اینجا روشت مردم تخلیش ها ببینید نکته خیلی خوبی اشاره کردید ببینید ما دائر هستیم بین این که فرصت همونو عدست بدیم یا ندیم الان که گشتیم مردم روش کردن چه اتفاقی افتاده روش کردن من به شما قول میدم چهار سال دیگه باز دوره اگه فضا رو یه جور مثلا ما مدیریت نخواهیم بکنیم یا ندکنیم دوره یک کاندر یه که حرفایی میزنه یه بازیایی در میاره یا مردم رو به اون رایی میدم صورت من میخواهم بگم این حرف شما خوبه ها ولی ما نود فرصت ها رو به خاطر این از دست بدیم اگر من اون نکته ارز کار آمدی یعنی مشروع سانای شما چه بالا توجه مردم صد درصد مشارکتشون بیشتر میشه. یعنی شما امکان داره در یه فصلی خلاصه مردم از این وضع فعلی کم ترهی نمیاد. ولی اگر همین یک انسجام و تلاومی در ها باشه قطعا کارآمدی بیشتر باشه مردم بیشتر میان جلو. مردم اگر یه وقتی احساس ناامنی، ناکارآمدی بکنن هی عقب میره من این هست که کف کسی که میاد کاندید میشه، شورای نگهبان ملاک پیدا میکنه که آقا کسی باشه که مطالبات نهاد ولاته اجرا کنه. میشه 4 تا کاندیدو 5 ثانیه کاندو معلومه این خودمونشون بهتر هست. دیگه نمیاد اینکه کسی که اصلا مطالعات رهبری اصلا قبول نداره بیاد کاندید بشه حالا با یه بساطی بیاد شو مردم مردمتون رای بدن ولی این نکته شما نکته جدی است ولی من عرض می‌کنم به من چیزش میارزه اگر ما این سیستمی داشتیم منسجم متلایم باز زودتر نظام رو علاوه کار آمدی دوزش رو بالا ببریم عرض می‌کنم اون قطعا اوناشم حل خواهد شد بسیار دوستان بفرمایید بازا با جمعید که حالا صف جلسه آن من هستم بعدش بله من جلسه رو به طور رسمی به ازمان میرسونیم و بعد حالا آقای دکترم هستند و دوستان ها یه سوال دارن خدمت مستاد برسند به اجازه هستم؟ باش به اجازه هستم آقای دکتر. خبیه سرابا خید رو سر واسه داشم وقتش کمه یه اول با خانم داشت وقت باشه حالا الان هر چی داشتم کردن. چون در رابطه با اون حالا چیز بحث فهم اجتماعی مثلا خودت اون مقاله تو تو کاور کردی یا مثلا مقالات تو خیلی مثلا بدون آدم یاری و ارشاد بکنه به مستقی که واردش می‌مونواد فهم اجتماعی هست. خیلی بهتر هست سو. نحوه های سرد می که هم کار شده یه ایسوخان رو می خواهی عراجی داشتن من تو رسالی بکنی ساکنده چاپ یکی مخالش هم بوده ما هم حساب نشده شما اگر دیگر دیگر این دو پرد بینی تنقیه و منات خواه این چی می شده؟ بینید این فهم یعنی شما تو تا این اجتماعی از دن گاهی به مقاسه رو گاهی به ف تنگیه منات سیره با سور، سیره اجتماعی، وقت اجتماعی، در باید بایاد و یعنی اختصاصاً فخری اجتماعی هست، اختصاص به شکل از اینا نده. همه این را بخواهده همون کبسند، این باره شایی سر رو بینده، شایی کرده. این از های فخری اجتماعی هست، دوره از اونم اسمشون مناسبات رو ولی من تو سعیش تو تو مرکز هست. باز که بهش وصلت که باشه. این, این, این یعنی اگر مثلا ما همه چیزی رو قبول بکنیم به اون واسه چیز، به عنوان یک چی بگم؟ اسمش ای... چی بگم؟ چی بگم؟ کما کاسه الفوز یعنی به عنوان یک قطر محصول میشه منصوب. من هم تو همون فورا امشب تو بودی دارید آگه سی آگه بحث کنی منشای برگو بحث کنی تماما مباحثی که طول معنا هست معنی مجود من هست یه چیز که اون پاکر میردید خب، حالا، این دلالت ها افتیکال ها جمعه داری شما چه تحصیل میرد؟ یه که من از لفظ برد زمونی که از لفظ برد هایی که از لفظ چه تحصیل میرد؟ اصلا تحصیل دارد یا نمیرد؟ این چه می ما هم جامعه بودیم دارد که منم نشود دادن دستید دارد این فقط نایمده ولی به چه درمشتید شکلون بسنان هم خوشی چه کار برگذاری؟ این ما این که نه یه مقان محمود هست یا مقایان شده بعد این قسمت یعنیتえば بست دخوت یعنی نظره milhões مندیه چه که که شاید از مقایان بالله، این مازو که بلقی محمود یک شما یک مقال که یه شهاید شادم سالگرد سالن